بسم الله الرحمن الرحيم المبحث الثاني التعارض والترجيح مبحث دو فوم ما تعارض وترجيح سدنا التعارض والترجيح إن الأدلة الشرعية لا تتعارض أبدا وإنما يقع التعارض بينها في نظر المجتهد. ولهذا فهو تعارض ظاهري وبالنسبه للمجتهد وليس هو بتعارض حقيقي بفرماید ادله شرعی هرگز با هم در تعارض باشد و تعارضی که هم واقع میشه بینشون از نظر مجتهد است به این جهت تعارض یک تعارض ظاهری است و با نسبت به مجتهد است و تعارض حقیقی نیست اینکه که بین نصوص تعارضی باشد سمکان ندارد چون الله مطال ممکن نیست که دو سخنه برخلاف همو بگه و همچنین نصوصی که در سنت اومده نصوص صحیح ممكن نسترشون تعارض بشأن الصحيح صحيح. بعد. ويشترط لوقوع هذا التعارض الظاهري أن يكون الدليلان في قوة واحدة كآيتين من القرآن الكريم أو كحديثين من سنة الآحادي. يمسألة دي ديك. وشعرت هس براي الضاقش دانئين تعارض الظاهري كأندتها الدليل لحاظ قوت در یک سطح باشند مالند دو آیه که هر دوتا متواترند یا دو حدیث از سنت آهات چون اگر از نظر قوت بالاتر باشند دیگه تعارضی در کار نمیاد بله و فی هایی حال یا المجتهد عن تاریخ ورود نصین در این حالت مجتهد بررسی میکنه تاریخ ورود دو نصر یعنی زمان که تا وجود داشت و ان لحاظ قوت در یک سطح بودند در این حالت مجتهد میاد نگاه بکند که کدوم یکی اولتر بودست و کدومیکی یکی متاخر اولی کدوم است بعدی کدوم است فه نقللی و تاریخه بان المتأخر منهما ناسخا للمتقدم اگر هم نه تاریخ آن دو را که متأخر ناسخ متقدم است اون نسی که قبلا اومده یه چیزی رو گفته آ؟ مثلا این کار رو انجام بدید بعد الناسی دو سال بعد دومده است که آقا اون کار رو انجام ندید این دو اون اولی رو منسوخ کرده حکم طبق این نس آخر هست البته اینو میشه اینجوری هم خود فَاِنُ عُلِمَ تَارِخُهُمَا حَكَمَه بِعَنَّ الْمُتَأَخِّرَ بِعَنْهُمَا نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّ لم يَعْلَمْ تاریخ ورود النصين المتعارضين او الا ان يعلم تاريخ ورود النصين المتعارضين لجأ المجتهد الى ترجيح احد النصين على الاخر بطريق من طرق الترجيح اگر تاریخ شود ندرس اگر تاریخ داده نشده از ورود دو نصي که در باهم دیگه در تعارضند اون موقع مجتهد تناه برد به ترجیح یکی از اون دو نس تاریخ دانسلشون میره و یکی از دو نس ترجیح میده با شیوه های ترجیح که اینجا ذکر میشن مثلا یرجح و علی الظاهر و ظاهر نس و ظاهر ترجیح داده میشه مرعب شود در سا قبلی ظاهر دیگه چه هست. یورجهح مفسر ال مفسر ترجیح داده میشه برست یور جهول محکب الماسی و واحد ظاهر اولس و او مفسر. یا محکم ترجیح داده میشه بر بقیه از ظاهر یاند یا مفسر وسی که محکب است از, از محکمات هست سبب بااحث عقیده دور زیدن شرک خب این ترجیح داده میشه محکم بر بقیه یعنی بر ظاهر و و مفسر خودشون رتبه بودند اگر در ها مونده باشد واضح و ها هم چارتا بودند ظاهر و نس و مفسر و محکم محکم قوی تر بود بعدش مفسر بعدش نس بعدش ظاهر خب مسلمه اگر بین ظاهر و محکم تعارض باشه محکم ترجیح داده میشه محکم بر همه اینا چون بالاترین درجه وضوح بود دیگه اگر بین ظاهر و نس باشه نس ترجیح داده باشه بین نس و مفسر باشه خب مفسر ترجیح داده میشه چرا؟ چون به الهاز ترتیب قوت أول محكم قرار میگیره بعدش مفسر قرار میگیره بعدش نس بعدش ظاهر ير... يرجح ال... يرجح الحكم الثابت بعباره النص على الحكم الثابت بإشارته. ترجيح داده میشه حكمي كثابت هست با عبارته النص برؤي حكمي كباشارة النص ثابت هست يرجح الثابت بإشارة النص على الثابت بدلالته وترجيه دادمشي مشي اوري ك ثابت است با إشارة النص برؤي ك ثابت است با دلالة النص شو نغير ياتون بيات ما خوندیم که، در بحث کیفیت دلالت لفظ برمعنی، در بحث کیفیت دلالت لفظ برمعنی، بر چهار مورد بود با خودش، عبارت و نس، اشارت و دلالت و نس، اقتزا و عبارت اشارت و دلالت و یا اقتزایش. خب، عبارت اسمه بالاتره بعدش اشاره بعدش دلالت بعدش اقتضا اینجا هم اگر یه نسی با عبارتش یه چیزی رو گفت و با دلالتش یه چیزی رو اون حکمی که با عبارت و ثابته با اون حکمی که با اشارت و نصی ثابت هست اگر با هم در تعارض شدند عبارت النس ترجیح داده میشه با اون حکمی که از سیوه اشارت النس یا دلالت النس ثابت هست ترجهو دلالت المنتوق على دلالت المفهوم عند تعارض دلالت منطوق بر دلالت مفهوم هنگام تعارض ترجیح داده میشه بحاله اون با منطوقش با نطقشی چیزی میگه و جای دیگر از مفهوم نسی چیزی بر خلاف این ثابت است در تعارض هست. خب اون چیزی که با دلالت منطوق ثابت است ترجیح داده میشه بر اون چیزی که با مفهوم مخالف ثابت است صد و ند جم و التوفيق و اذا تعذرت معرفت الناسخ و انعدمت طرق الترجيح التي ذکرناها و کان في قوت واحد فان المجتهدان یا نجویل الجم و ما من طریق الجم و که ما شد ما ناسخ یعنی دانست نشد که خدمتی تاریخشون معلوم نبود اون دو نصی که باهم ظاهرا در تعارضند. و از طریق ترجیح هم نشد یکی رو ترجیح داد با هیچ کدومی که از راه های ترجیح ترجیح داده نشد و دونست هم در یک قوت بودند در این هنگام میگه مشتهد روی می آورد به جمع توفیق بین دونست و جمع می کند بین اون دوتا با شیوهی از شیوه های جمع کردن و عمل کردن به نس شیوه های کردن چی شیوه های اصلا و من و التوفیق تخصیص العام فیعمل بالخاصی فیما ورد فیه و بالعام فیما وراء اذانک از شیوه های جمع کردن و جم توفیق کردن اینکه یه جای عامو و یه جای خاص میگه و خاص میکنه به خاص عمل میکنه در اون مورد خودش و به عام عمل میکنه به اون مورد خودش اینجا به هر دو تا نص عمل شد ویحمل المطلقه للمقيد مطلق حمل بر مقید میشه که این بحثش مفصل راد شود عمل عملو المقید فی موضعه و المطلق فی یا بر مقید در اون جای خودش عمل کرده میشه در اون چیزی که خاصتاره مقید و بر مطلق هم بر موارد دیگهش جزو قید قیدی که با در بار صلقید اومده و من طریق توفیقی تعویل احد النصین علی نحو لا یوارو ان الصلاح و یکی دیگه سیوای جمع کردن و توفیق تعویل کردن یکی از اون دو دسته به که به گوریه تعویل از شرحش داد که در تعارض با دسته دیگه نباشه. خب اینجا لازمه که یه نقطه ی رو یادآوری کرد دستان زیدان رحمت الله علیه اینجا جمع و توفیقو در مرحله آخر آورده ولی اکثر اصولیون ابتدا قبل از نسخ جمع و توفیقو بیارد بعدش نسخو بیارد و در مرحله آخرش بحث ترجیحو میارند و اگر ترجیح نشد در آخر آخرش مسئله توقف که در شماره دویس مطرحش میکنه مثلا امام الحرمت جوویلی و احیل دیگر ابتدا جمع و توفیق دو نسی که با هم دیگه در تاروزن اگر جمع ممکن نبود اون موقع به تاریخ مراجعه میشه ناسخ و منسخ و اگر نبود ترجیح واगर نبوت شماره 200 العدول الالدليلين المتعارضين ودول كردن از دو دليلي كه با هم در تعارض هستند كُلُّ همون مِنْ است واذا ان عاد بكل طريق من طرق دفع التعارض والترجيح ادل المجتهد للاستدلال باحد الدليلين البحث أقل منهما في كما لو ولم يمكن انتقل شیوه های دفع تعارض یا ترجیح جواب نداد اینجاست که عدول میکنه مجتهد از استدلال کردنه به اون دو تا دلیل و منتقل میشه به دلیلی که لحاظ رتبه از این... از اینا از این دو تا پایین تر باشه مثلا اگر تعارض وجود داشت بین دو نس و ترجیح ممکن نبود میگه مجتهد به قیاس روی بیاره در برده بود مسئله این بود از بحث تعارث